اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم بسم الله الرحمن الرحيم مبارسه یه تبب بحث الخل قتل قوت الانبیاء تی این بحث بودیم مؤمنان تبب المعصومی که طب وحیانی در چهار پایه استواره، یکی الحمیت و پیشگیری پرهیز پرهیز صحح که طور آیاشیه از هفت روز تا 14 روز بیان شد. دوم الوقایه یعنی پیشگیری صحیح. سوم العلاج درمان به موقع و صحیح. ولی احتمال برگشت بیماری هست. چهارم الشفاء درمان به گونه ای که احتمال برگشت بیماری هم نیست. به کارگیری طب عام یعنی اصول طب داخلی اسلامی به چند چیز یکی شناخت طبع ها و مزاج ها از حیث گرم و سرد گرم و خشک گرم و تر سرد و خشک سرد و تر یا مزاج سرد شناخت طبع ها و مزاج ها دوم دفع اخلاط زائده از مغز اعصاب از معده از رودها یعنی از کل بدن سوم ده صفاست زدن ورید سطحی چهارم حجامت به نوع سعی. پنجم دفع انواع قولنج ها اسپاسم عصبی یا عضلانی یا انواع باد گرفتگی ها ششم مؤمنه یعنی داک کردن داک نهادن به اسطلاع امروز بحث لیزر درمانی اینا خواستم بگم به کارگیری طب آمه در طب اسلامی و روایات معصومی اصول درمان در تمامی بیماری ها سه چیزه یک بیماری شخص رو به درستی تشخیص بدین دوم طبع و مزاج شخص رو به درستی تشخیص بدین از حیث مقدار سوخت ساز داخلی متابولیسم از حیث کالری از حیث اثر پذیری یا گذاری مزاج و طبع شخص رو به درستی تشخیص بدین اینم دوم سوم دارویی که تجویز میکنی چه داروی شیمیایی چه داروی گیاهی چه داروهای هومیوپاتی یا نوترکیبی چه داروهای مولکولی و هوشمند دراکتیویلی ها داروت باید بر ضد و مزاج شخص باشه یعنی اگر مثلا تبع شخص و مزاجش گرمه شما باید داروهای سرد بده اگر طب و مزاجش سرده باید داروهای گرم بدین گاهیم اینه شخص دو مزاجه است بدنش و کف در پاش داغه میگی مزاجش گرم اما معده و رودش بر برعکس هم داره. بدن و کف دست پاش همیشه یخه اما معده و رودش همیشه داغه میگه گر گرفتم داغه اینه هم که دو مزاجه هست باز باید دو نوع دارو بدیم هر کدوم برای یک قسمت. در درست موامنات این هم اصول درمان در تمامی بیماری ها این سه چیزه تشخیص سعی تشخیص طب و مزاج شخص درمان در تجویز دارو باید ضد طب و مزاجش باشه اینجا درمان سریع تر با هزینه کمتر. و درمان بیماری در مدت زمان کوتاهتر بهبودی حاصل میشه. مریض سالم. اصول تغذیه صحیح از نظر روایات اهل بیت عصمت و طهارت و آیات قرآن مجید. نه چیز. یک غذا یا رژ مقضی شخص بخورد. پس محرک ها یا اسانس های شیمیایی نباید بخورد. دوم جنسیتش رو باید در نظر بگیره زن مرد پسر دختر سوم کار و تحرک یعنی غذای و, و قضی میخوره مثلا کارش چیه باید کارش رو چیه بعد غذای مناسب بخوره چهارم زمان مصرف صحیح باشه مثلا صبح زود مثلا صبح زود یا سحرها مثلا صبحونه یا سحری یا اول شب برای شام یا افتاری خوردن تصالب فهمونی زمان مصرف سعیه و بجا باشه پنجام مقدار مصرف به مقدار لازم باشه یعنی طبق نیاز واقعی بدن باشه شیشم این قضا یا ریزم قضی که میخوره نویف یعنی بهداشتی باشه تو اصل تهیه تو اصل کردن، تو اصل توزیع قضا تو نگهداری غذا ما مانند اینا نویف باشه یعنی بهداشتی باشه تا این جایی که شمردم علم جدیدم فهمیده تو تخصصی تغذیه و تو تخصصی بهداشت و درمان مثلا فرمودین بحث استریلیزه و بحث همانیجه و بحث کشتن باکتری و یا ضد عفونی ظروف محیط و ما يتعلق به بی این بیمار تو بحث قرنطینه خب بگم علم جدید تا اینجا چه حالا روایات اهل بیت اسمت و طهارت همه اینا رو گفتن به اضافه هفتم حلال باشه این غذا یا و قضیه، پس حرام و شبهناک نباشه مکروه کراحت شدید نباشه چون گاهی شیعی ذاتن مکروهه اما اگر شخص بنا بگذاره بر اینکه، هیچ وقت این مکرو ترک نکنه. اینجا شاعبه حرام هست. مثل مثلا پنیر به تنهایی خوردن مکروه. تخم مرغ، کوکو به تنهایی خوردن مکروه. این پنیر رو در شب بخوره با زمیمه. مثلا با سبزی خوردن. با مغز گردو حالا رفع کراحت میشه استحباب میاد. این تخمه مرگ یا کوکو با پیاز بخوره حالا رفع کراحت میشه تصالب فرمودی بودیم ها؟ اما اگر همیشه بناش بر این باشه حالا جگاه این که حرام نیست این بگذاره هیچ وقت رفع کراهت نکنی اینجا شاعبه حرام هست چرا؟ چون ترک فرمان مافق سعیه بی اعتنایی به سنت رسول الله هست. بی اعتناء بودن به اصول ارزشی ها یا سنت واقعی که به نفع انسان تو دنیا آخره حتی به نفع جسمشه بدنش اینجا شاعبه حرام هست تصارو فهمید مؤمناتی گفتن از اون تو مستحبات هم همجره مثلا میگیم خلال دندان ان شاءالله بحثش بعدن میکنم یکی یکی روز دیگه خلال دندان مسواک هم خب مستحبه حالا اگر کسی بنا بر این هیچ وقت خلال نکنه هیچ وقت مسواک نزنه شاخه حرام هست چون سنت رسول الله و دین حنیف ابراهیمیتی استواک خب قبل از هر از استواک دین حنیف ابراهیمیت خب قبل از وضوح مسواک نمیزنه قبل از خواب مسواک نمیزنه بعد از غذا خلال نمیکنه جایی که آب هست همیشه بناش بر همینه که این مستحبا رو ترکنه اینجا شایبه حمام هست ازباب چی؟ ازباب عدم رعایت سنت رسول الله و دین حنیف ابراهیمی اینجا شایبه حرمته گرفتین امون چی شد؟ پس اینجا قضا یا ریزم قضی حلال باشه رفتار، کردار، اخلاق و مانندو باید مثبت باشه شایسته باشه، حسنه باشه حتی اگر مستحب که باید انجام بتو رجحان الفل داره گرچه جوازه ترک داره اگر همیشه ترک کنه میشه چی؟ شایبه حرام یا مکروه یا کراهت شدیده تصاله فانم اما همیشه بناشه بذاره بر انجام درسته جواز فعل داره اما چون ترک کردی سنتو از باب زایع کردن سنت رسول الله چون انسان اول آخر اگر خوب رو ترک چه بخواد چه نخواد تو بد میافته چه عملیات ذهنی باشه چه عملیات خارجی اگر خوب رو تک کنه تو بد میافته چه بفهمه چه نفهمه یعنی اگر تصور بد، تصدیق بد، شوق بد، میل اکید بد، عزم بد، جزم بد، تصمیم بد، اراده بد این همه مقدمات فعل اختیاری خب اگر این بدا تو ذهن باشه دیگه جای تصور خوب، فعل خوبم بد ساده نمیشه. اراده خوب نمیمونه که بعد فعل خوب ساده مثل اینکه این آب و آشامیدنی سالم داره مومن آب جوش وله سالم داره. حالا اینه خالیش کن. ما خلقه مطلق که نداریم هم. اینه که خالیش کنی هم جاش هوا میاد. حالا هوای گرد خاکیه، پرزیه، ذرات معلقه در هوا، آیروسل، هیدروکربان های محیط. ببهم. شما چند روزی که توش نیاد کنم پر گرد و خاک و ذهن انسان هم همینه. اگر توهی بشه از علم و یقین. توهی بشه از تصور و تصدیق خوب. اراده خوب تصمیم خوب. جاش بد میاد. چه بخوای چه نخوایی. چه بفهمی چه نفهمید. اگر آدم فکر بد کنه. بعد عمل بد زمینش جور میشه از آدم سر میزنه. مثلا هم فکر بد خوب خب یک چشم چرانی کنیم به این دختر نامحرم همسایه یا همکار نمیدونم یا مثلا یکی دیگه تو خیابون یا کنار دانشگاه دو دویرستم خب بعد فعل بعد از این سر میزنه چشم چرانی به نامحرم بعد خودش پس لرزه های بعد زیاد میشه استمناده در پسران استشاده در دختران تفخیص تدلیک زنا لواد جدی همه چیه بد، بدتر بدتری میشه اما اگر ذهنش درست تصمیم بد نگیره، اراده بد نکنه، تصور بد، شوق بد، اینا پیش نیاد. روی خوبیا برو. فعل خوبم ازش ساز. خواستم این رو بگم مؤمنام. مثلا مطلب هفتم دین میگه چی؟ ابوجه میگه قضا و رزق مقزید. چه مربوطه به بدن و جسمت؟ چه مربوط به روان و ذهنیاتت؟ چه مربوط به روحیات و روح؟ میگه این قضا و رزق مقضی حلال باشه. حرام نباشه، شبههناک نباشه، مکروه نباشه، کثیف شدید نباشه. علم جدید هیچ نفهم این تو اصول ترضیه سعی اسلامی. هشتم مؤمنا میگه این غذا یا ریزم قزید فاهر باشه، فاهر. پاک باشه. پس حرام نباشه، متنجس نباشه. آدمم دست و پا چلوفتی نباشه. که شیر تو شیر عمل کنه به صلاح آمیانه گربه کنه دیدی این فیلم های کابای میره تو یه زرف میشینه مثل یک سک میره مثل یه باشکه مره. با همه های عرقیه، ها شا عرقیه، اینا اونا که قاصل جنابه ندار حالا میره تو همین میشینه آبم هم قلیف بعد تو همین صابون میزنه لیف میزنه اینا بعد هم اگر همین میاد بیرون مامنا خوش خوش مونه اینه ما به صلاح آمیانه میگیم گربه این پلشتی نه آدم اصرافکار باشه و بریز به علکی داشته باشه نه اینجور گربه شوری کابای بده که شوری پلشتی بده مثل کسی که خمیر ریش میزنه بعد تیغ میزنه بعد با حوله خوش میکنه میره هیچ قربتی گریه خب آبا اگه یه قلطی هم میکنی خب بعدش هم با آب بشور گرفتی مومن ها چی میکن؟ این که خمیر تیغ میزنه بعدم تیغ میزنه بعد با حاله خوش میکنه میره انواع بیماری های پوستی میگنی مومن ها چه کاریه؟ به عنوان انسان انسان عاقل به دست خودت خودتو مبتلا به انواع بیماری های باکتریایی قارچی و عفونی پوستی سطحی یا زیرپوستی نکن اسلام بد میگه؟ اسلام دوستت داره میگه پیری زودغست پوست نگیری بعد میگه طول عمر سلولای پوستیت کتا نشه بیماری های قارچی پوست باکتریای های کیست زیر پوست الودگی خونی نگیر اسلام بعد میگه یا شما رو دوست داره وجدانا همه افراد بشر رو دوست داره خواستم مؤمنان بحث چی بگم؟ بحث طاهر بودن میگه این قضا یا ریز چی باشه اما طاهر باشه پاک باشه نجس نباشه متنجس نباشه دست و پاچ لفتی نباشه یعنی گربشوری نکنید یکم طورزی دارم مطلب نهم میگه این قضا و ریز مؤمنا پاکیزه باشه فیب باشه غیر فیب نباشه رجس با سین آخر رنجز نباشه ان عمل خام رو و مییس رو من عمل الشیطان فشتتن بود انواع مسکرلات خوردن ریس خدا میگه اجتناب کنید چه جامد باشه؟ چه مایه؟ درتون معام فس غیر قیم نخور ری نخور خبی نخور خبیست با سه ناخته وی ح مععلم کممال هم نخور گوشت میته نخور میگه حاجیقا اینجا گیوتین هست تقم می‌زنه یا با دستش تق کله مرغ یا گنجشک یا کبوترو میکن از این ادا اطوار چال میدونی از خودتون روناندازین چه داخل کشور چه خارج کشور کشورها مختلفه میته خوری حرامه یکی از ضررهای وضعی چیه عمر انسان کوتاه میشه یکی دیگه از ضرارهایی وزیش چیه؟ قصاقت قلب میاره بفهمو انسانی؟ بله خودتو دوست داری؟ بله چرا به دست خودت عمر خود کوتاه میکنی؟ چرا به دست خودت تعادل روانیتو به هم میزنی؟ و ایجاد های بیجا میکنی؟ و ایجاد های بیجا میکنی؟ چرا؟ حالا اسلام عزیز که به لسان مبارک چهارم عصوم از جمله رسول الله می میت خوردن حرامه خب شما رو دوست داره رحمت الله است. تو انسان اهلی باش تو بچه اهلی باش به نفخ خودته به مافوق سعی که آسیب نمیرسه اگر پفتل خوری کنی بد خوری کنی پر خوری کنی حرام خوری کنی نجس خاری کنی خودت زایه میشین به جای اینکه که یک اثر مفید در اجتماع داشته باشی. اثر بخشیات همه مزر میشه به جای اینکه تعادل روانی مستمر باشه تو چار اختلالات روانی همچون خشونت های بیجا میشه نزیر کسی که حشیش خورده پس باشه اینم اصول تغذیه سعیه حالا این رو سه تا مقدمه بودم میخوام بگم یکی از چیزهایی که باید تو سبد جیره غذایی خانوار باشه چیه؟ سیب رسیده شیرین سیب رسیده شیرین که تحییه و تولیدش هم ارگانیک باشه یعنی طبیعی باشه از آفات گیاهی، از سموم شیمیایی به دور باشه حالا اینه درست بچینید داش برداش، همه درست توضیح درست نگهداری هم درست مصرف هم سعیبه بجن بهترین زمان مصرفش که یه؟ بعد از غذا یک عدد. اگر کسی یوب یا نفخشی کم داره چی؟ آبش میگیره یه استکان آپسی به تازه میخوره. حال اگر کسی بیماری مختلف داره. مثلا تب داره. مثلا عفونت باکتریایی داره داخلی. مثلا کمخونی فقر آهن داره. مثلا اشکریزی بیمورد داره. نیاز به داروشیمیا یا آنتی هستامین داره. مثلا سرسوزه مهده داره تهوع داره ریفلاکس و برگشت اسید مهده به مری یا به فضای حلق داره مثلا تلخی دهان صبحگاهی داره مثلا فرز کن وصفاس فکری که تشدید خیالاته داره مثلا مومن مسحور شده سحر ساحر در او اثر کرده یا میخواد اثر نکنه تمام این مواردی که شمارده سیب رسیده شیرین مصرفکانی ها پیشگیری از همه اینا میکنه همه اینا هم درمان میکنه ای کسی مبتلاست من تو ذهن مبارک دونه دونه اینا روایات رو داریم برزیش علم جدید فهمیده اما تو قسمت لمم که وسواس خیالی و فکریه و تو قسمت زدسر سه علم جدیدی چی نفهمیده. بلی تمام اینه که خدمتون گفتم و تو روایات اهل بیت اسمت و طهارت تو باب و تفاح در فروع کافی تو بهار علامه مجلسی جلد شستشی تو مستدرک محدث نوری تو جامع احادیس شیعی آیت الله از ما برو جلدی قام تصالب فهمیدیم؟ در بقیه بزرگوارا اومده حالا یکی از فراورده های سیب سیبه رسیده شیرین ارگانیک ارگانیک تهیه سرکه طبیعی سیبه که چند روز داریم توضیح میدیم تا رسیدیم به اینجا حاج چگاه اگر کسی پاهاش زیاد بومیده زیاد عرق میکنه حتی چلیست زمستون حالا بخوام بوی عرقشو کم کنم و از بین ببرم و عرق زیادم نکنه گفتیم کفه پات چیکار کار کنه با پنبه آقشته به سرکه طبیعی سیب بمال بعد همجور بذار رومو تکم اومنه تا خوشه خارجی ها میان جراب سرکهی مثلا جراب پشمی رو آقشته میکنن به سرکه سیب و میپوشن بعد روشو رو با پارچه نخی یا کتانی میبندن به کاراشون برسن یا بخوابن اینا به اصطلاح خودشون میگن جوراب سرکهی خب معنوشن اموجه ها جوراب های سرکهی کمپرسه جوراب سرکهی چند خوبی داره؟ یکیش چیه؟ مال عرق کف پا دومین خوبیش چیه؟ تب رو میاره پایین جوراب سرکهی یا کمپرس سرکه روی پا باعث پایین آمدنه تب میشه وقت ما اینجا حاشیه زدیم عموم. اگر کسی طب شدید دارد یا به عنوان پیشگیری میتونه حنا رو مخلوط کنه با سرکه سیب این نهل بکیه یک قاشق پلوخوری پودر حنا میزه تو نهل بکی روش رو مومن ها سرکه سیب میزه هم میزنه میشه یه زماد کف پاش قسمت تخت فنری های کف پا مومن ها میذاره باشه به مدت 20 دقیقه تب شدیدش میاد پایین. این بچه یا این شخص دوچاره تشنج نمیشه. که مشکلات کببی یا مشکلات کلیه براش پیش بیاد. اینه گفتیم. مخلوط حنا با سرکه که در کف پا گذاشته شد. تب شدید را پایین آورده و نمیگذارد. مریض تشنج بگیره. اینه به کتاب خارجی هم حاشیه زدیم. نویسنده مارگوت هلمیز صفحه 86. اینجا حاشیه زن. حاشیه دیگر هم زنیم. مثلا اگر کسی فشار خون بالا داره گفتیم صبر زرد یعنی آلو احورا. اینا مخلوط مخلود کنه با سرکه انگور عسکری یا سرکه سیب معوم رو کپ و پاش بچسبونه. بی دقیقه فشار بالاش میاد پایین. دیگه نیاز نداره قرص های زیر زبونی حم حلو قرمز رنگا زیر زبون بذاره. یا کپسول یا قرص های کاش فشار بخوره که دو اثر وضعی بد داره. هم نامان از زمین قلب میاره و هم پوسیدگی جدار داخلی کلیه میاره. این قرصا و کپسول شیمیایی همه متخصصای های کلیه میدارن تمام متخصص های کبد می حالا معومنا اصلا نمیخواد چیزی رو مریض بدیم. اینجا چکار میکنه اما جون مخلوط صبر زرد که همون آلو احوره هست یه قشو پلوخورهتون علبیکی میریزی؟ بعد سرکه انگور عسکری مخصوصا سرکه سیب طبیعی قاطیش این یه و کف پای مریض این تخت فندریای کف پا 20 دقیقه بچسبون فشار خونش میاد پایین اگر فشار خونش نوسانی و بالاست 16 18 22 همینطور میره بالا بزاد چند ساعت کف پاش بچسبه تا فشار خونش بیاد بین 10 و 11 بعد از کف پاش برداشت خُم معلوم شد اگر همچون باشه همجور فشار خونم یه ربع پایینه پس ازیم را بم نیفته نه بعد از یک مدتی ود بعدی حداقل 20 دقیقه حداقل 100 دو ساعت حالا یه بار دیگه کسی مثلا قند خونش بالاست یا نا وسایل 400، 500، 600، 700 میریزن دکتر آن داره که این قند و کاهش بدن با تزریق چند دوز انسولین در فواصل متناوبی. شما پودر هندوانه حنزر که ابو جهله خربوزه معاویه سمی هم است. این پودرشو یا تازه شو کف پای مریض بچسمه. بذاره چهار ساعت باشه. اگر قندش مثلا چهار ساعت باشه میاد دیویس. اینا هم مؤمنان اینجا حاشی زدن. نکته مهم در طول درمان با سرکه طبیعی سیب یا انگور عسکری از یک رژیم غذایی مناسب استفاده کنید. باز اینجا حاشیه زدم. بعضی کتاب ها میگن کلا چربی حیوانی رو حذف کنید. از جمله این نویسنده. فرمایشش فل جمله درسته. ولی در بعضی مواردش غلطه. درستش باید چجور بگی؟ باید بگی رژیم غذایی که ترانس چربی بالا نداشته باشه مخصوصاً روغن جامد یا روغن هیدروژنه کیک خامه ای رولت نارنجکی تهدیق تو ها موز کله پاچه جگر این ترانس چربی بالا تو رژیم نباشه تو بحثای هیدروکربانی تو پیک بار ترافیک تو کوچه و خیابون پرسه نزنه تو پیک بار ترافیک یعنی الان که پایی جزمه مثلا از ساعت یازده صبح تا دوی بعد از ظهر بعد از زورا از ساعت چار تا هفت شب تو کوچه خیابونا گذ نکنه بقول مشدیام یعنی قدم رو قدم نزنه چخ سواری موتور سواری ماشین سواری نکنه تو پیک بار ترافیک که ذرات معلق در هوا یا زیاده زیادن های موهید زیادن علاوه بر اینکه آلودگی صوتی و آلودگی هوای پیرامون زریب خشونت های بیجارا در شخص زیاد میکنه و شخص رو کلافه و بی می‌کند. میکند سود از کور در میره آلودگی های ریه هم میگیره آلودگی‌های های خارش های چشمی سوزش چشمی و در بعضی مواقع تراخوم چشمی هم میگیره درمان نکنه که منجر به کوریش میشه تو تراخوم های شدید حالا مباعثه خودم. وقتی این مشکلات پیش اومد، مشکلات پوستی. های پوستی زیاد میشه. دونه‌های برجستی پوستی هم زیاد میشه. چرا؟ چون منافذ عرق و منافذ غدد چربی بسته میشه. به خاطر این گرد و خاک و به خاطر این هیدروکربن‌های محیط. دیدی مونا چجوری با هم خواب کرد؟ پس که گفتم یکی از فواید سرکه سیب چی بود؟ همونجور. بحث اگزمای پوستی بحث خارش پوست حالا منظور اینه در طول درمان رفتارش با خودش هم منفی نباشه پس تو که بار ترافیک نباشه همچنین در محیطی که دودزا هست مثل ایستگاه اتوبوسا ها مثل تعمیرات ماشین و موتورها، ها مخصوصا مطور های دیزلی از دود گازایی یا جاهایی که آپاراتیه که می سوخت روغن سخته روغن مونده دود قلیز مونمونم اونجا بایستن خواهشون گرم میکنن زمستان. یا چوب بگ میزن خواهشون گرم کنن اینجا در طول درمان نباید در جایی باشه که دوده چه خودش سیگار میکشه چه دیگری سیگار میکشه چه سوخت‌کردنی با, روغنه، تفت با روغنه، چه چه روغن، چفت‌دادنی با روغن. چه دود گازوینه، چه دود واقعاً سوخته. و مانند اینا اگر نه اثر بخشیه، سرکه طبیعی سیب صفر میشه. قوی واکنش معکوس میشه. چون با وجود اینها، کمین معادله برعکس شد. پوست رو بیشتر تخریب کرد. تصادف فهمید مؤمنه. بایی گردخاک و دوده و پرز و اینها این معادله برعکس میشه یعنی سرکه سیب میخورا زودتر نفله میشه چه از هی چه از هی دستگاه گوارش و لذا به حرف این خارجی هم اینجا حاشیه زدم از توضیح دادن پس در طول درمان با محلول آب سرکه طبیعی سیب هم باید مواظب به خوراکش باشه تماس چربی بالا نخور هم معاذب رفتارش باشه رفتارش با خودش منفی نباشه تو پیک بار ترافیک نباشه همچنین همچنین اگر اضافه وزن داره یا عادت،, یا عادت زشت پرخوری داره اضافه وزن و عادت زشتشو تک کن و اضافه وزشو کم کن این هم مؤمن ها برای شادابی پوست مؤمن ماساج با روغن کنجد که لطیف بشه بعد دفعه دیگه با ماساج با سرکه رقیق شده سیب شادابی پوست میاره و رفعه مواد زائد از روی پوست میکنه بقید چهرت گلگون و گل بندازه باز اونا چیزای دیگه از خدمت رو میکنه. کسانی که ناموسشون یا ناموس مردم مراجعه کردن و میگن ترشوهات اضافی هنگام قاعدگی دارن ترشوهات اضافی محبلی هنگام قاعدگی دارن اینها در دوری اینا باید نوار بهداشتی شنو کرسوفه که تو شیعه میگه فروع کافی جلد سه چاپ اسلامیه هشت جلدی جلد سه نوار بهداشتی شنو تونتون عرز کن نه روزی یک بار دوم اینکه وقتایی که پاک شدن از عادت ماهیانه و یا از خون ریزی های مکرر در محلول آبسرکهی طبیعی بشینم به مدت 20 دقیقه اینجا قارچ‌های های کشاله ایران بیماری سفیدک محبلی، خارش محبلی نوحتی های دهان رحم افونت های مجاری ادراری و دستگاه تناسلی چی میشه؟ خوب میشه چون یک ضد ویروس، ضد باکتری و ضد قارچه قویه محلول آبسرکی طبیعی چه سرکه انگل عسکریه چه سرکه سین این هم مؤمنو. این مطلب یک زده عفونی طبیعه حالا هفته یک الان دوبار افونت شدید تره یک روز در میان افونت خیلی شدیده هر روز یکی دو هفته که تموم شد اورژانسی تموم شد حالا دوباره کمش بکنید یک روز در میان کم کم هفته دو دوبار کم کم هفته یک بار کم کم ماه یک بار کم کم سال یک بار تصافت پاهم ها. افونت های پایین تنه نباید باشه چون هم به خود شخص آسیب میریسه هم به زوج حلالش و هم به بچه در رحمش یا بچه شیرخاری که داره اگر کسی قارچای پوستی بین انگشتان پا داره اونها هم توضیح قبلن دادن بعضی ها مؤمن ها زعف حافظه دارن هشتاد خورده مورد تقویت حافظه داریم شست خورده مورد عوامل زعف حافظه داریم گاهی بعضی ضعف ضعف حافظه دارن به خاطر اینکه که چربیای مضر خونشون LDL کلسترول بد یا تریگلیسرید خونش بالاست و یا انزیم های کبدیش بالاست گاهی ضعف حافظش از این ناحیه است حالا یکی از کمک کننده های به درمان ضعف حافظه در چنین کسایی چیه؟ مصرف محلول آبسرکس یه قاشق چای خوری یا یه قاشق مرب بخوری سرکه طبیعی رو در یه لیوان آب بریزه بخوره ضعف حافظه دلائل زیادی داره که باز حاشیه زنیم شست خورده مورد ضعف حافظه میاره مثلا کمبود منگنز بدن. مثلا طرف بی حوصله بشه و کمسرد بشه در تحقیق و پژوهش و همچنین کلاس دست یا مباحثه یا درس دادن و مانند این ها مثلا هنوز یکی دو صفحه نخونده کتاب و دفترشو پند کنه شروع کنه به زمین و زمان و کلاس و معلم به همه دریبری بکنه اینجا این بی حاصلی و کم به خاطر کم بوده لذین مغزه لذین مغز اونجا باید موز رسیده با شیر بخوره شیر موز طبیعی ها لذین مغزش تأمین میشه از صبح ساعت 8 تو 12 تو کتاب خونه باشه یا مباعثه کنه یا تو کلاس باشه خسته نمیشه چون لذین مغزش تأمین و چیزایی دیگه هست مثلا سر و صدای زیاد جیغ زدن در حال جنابت خوردن و آشامیدن و مواردی دیگه است. مثلا تعادل کلسیوم و فسفر در بدن به هم بخورد همجور ادامه بده تا شست و خورده ای اینا همه چی همون ضعف حافظه میره حالا اونی که اول توضیح دادم و شعبیه مزرد خونش زیاده آنزیمایی که به بالاست حالا میتونیم با سرکه طبیعی رقیق شده انگور عسکری یا سرکه طبیعی رقیق شده سرکه سیر درمان کنیم اگر کسی ضعف حافظش ناشی از اختلالات روانی، آشفتگی ذهنی، عدم تعادل روانی باشه. اینجا دلیل علمی نداریم که بتونم با محلول آب این عدم تعادل روحی، فکری، روانیشو خوب کنه. نمیتونه. دلیل علمی نداری. بله میتونه یک مجاورتی باشه. اما به شرطی که سرسوزه معده و ریفلکس شدید نباشه در به هم ریختگی های ذهنی طرف رو باید رفتار درمانی کرد مشاوره تربیتی داشت و مشاوره فرهنگی به اصلاح اعتقادات یعنی آداب و رسوم صحیح اسلام ولایی فرهنگ اهل بیت اسمت و طهارت رو بهش یاد بدی دوم تربیت اسلامی از طریق اهل بیت اسمت و طهارت رو بهش یاد بدی سوم اخلاق حسنه اسلامی از طریق اهل بیت عصمت و طهارت و رفتارهای مثبت از طریق اهل بیت اسمت و طهارت رو بهش یاد بدی این مشاوره روانی این مطلوبه که ملا احمد نراقی در کتاب معراج و سعاده و اون نراقی بزرگوار دیگه در کتاب جامع و سعادات بیان کردن و یا علمای دیگه تو بحث اخلاق نظری و عملی مثل مرحوم کراجکی در کتاب معدن الجواهر مثل ملا محسن فیض کاشانی تو کتاب اخلاق حسنه مثل آیت الله مهدوی کنی تو کتاب گناهان کبیره آیت الله شهید دستقیب شیرازی تو کتاب گناهان کبیره و تو کتاب قلب سلین و مثل بیانه رحمت که کتاب علامه بزرگوار علامه نمازی شارودیه و کتابهای های دیگهی که در این زمینه مؤمنان نگارش شده و تحقیقات علمی گستردهی هست هم از آیت الله جوادی آمولی حفظه الله است، بسه اخلاق عملی کتابش نگاه کنید هم تو کتاب علامه حسن حسنزاده عاملی هست مؤمنا پس کتابش رو نگاه کنید نهجل ولای نهجل ولای خب مثلا اینا رو نگاه کنید تا بتونید تعادل رو روح فعال مثبت فکر خوب متمرکز عقل فعال کاربردین شعور بجا و به موقع که صحیح و فهم عمیق از مطالب دوشته باشه. تا ذریبه و سیرت در انجام اعمال ذهنی بالا بره اعمالی هم که تو خارج از سر می زنه هیچگاه ناهمگون بدون انسجام نباشه اون کتابایی که تذکر دادم خواستم بگم برای برگرداندن ذهن به هم ریخته روحیه جهنمی داشتن بخوام اینو تبدیل کنم به روحیه بهشتی رفتارهای منفی رو بخوام تبدیل کنم به رفتارهای مثبت. اخلاق سیعه رو بخوام تبدیل کنم به اخلاق حسنه سنت های جاهلیت الاولا به سنت های مدرنیته به سبک کاپیتالیسم رو بخوام تبدیل کنم به سنت رسول الله اول باید تعادل روحی روانی ایجاد کنی پس مشاوره درمانی مشاوره تربیتی سعی مشاوره فرهنگ ولایی شیعه رو باید ستاره داشته باشیم نکو پیرایت از ترجمه های بالینی از قرباشر که اکثرش حدسیات و فرضیات و نظریاته علم و یقینش خیلی کمه اصلا یک کتاب قطور کلش اگر جمع بشه علم و یقین رو سه چار صفحه میشه خواه بگم اهل بیت اسمت و طهارت رو فاکتور نگیرید تو زندگی مومن ها. اینا کتاب ناطق هم. قرآن زندگی سعی رو به من شما در دنیا و آخرت نشون میده قرآن سامت رو مبینه چهارده معصومه پس رجوع کن به چهارده معصوم تا کتاب زندگی سعی در دنیا و آخرت رو بدونید راهکار عملی اجرایی سعی رو انجام بدیم نه بدون راهکار بدون پشتوانه فرنگی سعی هر و قراش شو. بدون انسجام عمل نکن مثل اینکه که گربشوری بود مثل اینکه پفتلخوری بود مثل اینکه بدخوری غلط بود همینطور که مهده خوراک می مغزت هم خوراک می خواد. یه بار کالریو انرژی مغز میخوای قند طبیعی میخوای تو 24 ساعت حداقل حد 150 میلی گرم گلوکوز طبیعی میخوای اگر قند مغزت کم بشه که گیجگاهات شقیقات به شدت درد میگیره یه ستم نمیتونی بخوری یه بار دیگه نه خوراک مغزی که میگیم بحث جسم نیست بحث روانه چگونه بتونم بتونم ایجاد تعادل روانی کنم چگونه بتونم تعادل آوانی خودم و افراد رو حفظ کنم؟ چگونه بتونم اعتماد به نفس در خودم ایجاد کنم و سبب تقویت حس اعتماد به نفس در دیگران بشم؟ چگونه بتوانم خوبی های دیگران رو ببینم؟ نقطه سنجی‌های بیجام نداشته باشم؟ آیدامه آموزش بخواد آموزش یادگیری صحیح میخواد پس انباشت اطلاعات صحیح باشه ذهن. این با وجود تعادل روانی و تمرکز فکر خوب ممکنه. اگر تعادل روانی نباشین، تمرکز فکر خوبم نباشه. فکرم مشوش باشه، نختوش باشه. یا فکرم بد باشه. میشه هیچ چیزی خوب ازم صادر شه، وجود نمیشه. نه تو عملیات ذهنی، نه تو عملیات خارجی. درست المؤمنان پس یه نقطه اینجا گفتم به خاطر اینکه بعضی سنت های قلط که خیال میکنه تعادل روحی روانی نداره حجقا بیا رژیم آب سرکه بدم خوبش نه شبیه جوک و رومان میمونه ولی دلیل علمی بر درمان نداره این لذا اینجا اگر کسی تمرکز فکر نداره تشویش فکرش زیاده تو یه بعضی مطالب گفته من این کنار کتاب این بنده خدا خاشی یکی از مطالبی که دین فرموده چیه میگه تعدد کار به صورت ناهمگون نداشته باش زیرا که مشغله زیاد کاری تعدد روانیت و تمرکز فکرتو به هم میزنه و برداشت اطلاعات از حافظه موقعتت رو کند میکند پس علیکی مشخلی زیاد برای خود جو نکن که دست فاگیر میشه حافظه اصلیت ضعیف نمیشه برداشته اطلاعات از حافظه موقعتت کن میشه این یک روایت روایت دیگر تو کتب اهل بیت اسمت و طهارت میفعماید یکی از چیزهایی که اخلاق انسان رو بد میکنه و سیعه و تمرکز فکر خوب رو از بین میبره زایعش میکنه داشتن قرضهای کمرشیکنه یا قرضهای کمرشیکن نمودنه بابا جون پا اندازه گیریمه درست کن تو که در آمده ماهانت مثلا دیمیشت هزار تمنه تو رو چیکار؟ که بری 20 میلیون قاش کنی، هرمان یک میلیون پرداخت کن آخه میخوای بعد هوا بخوری؟ انسانی مدد در اینا اجوفی، محتاج به خوراکیو آشامیدنی. حالا تو به این یک میلیون، خب پنسر زاتان همه حقوقت دادی. اون پنسر زاتون هر کجی میخوای بیاری؟ مثلا کار دوم داری، من پنسر زاتم دیگه. حالا خواهی تو زنرچی میخوای چی بخوری؟ بری کار سومو انجام بده. پس کی میخوای بزند برسی؟ کی می خواهی به بچهت برسی؟ کی می به استرحاد شخصی برسی؟ معلومه به هم می زید. اینجا اخلاق تون میشه یعنی زود از کور در می و بی حاصلی کوچکتر این چیزی تو به هم می زن. کوچکترین کوچکتر چیزی مثلا دستمان اینجوری بیافته به هم می ریزیم گفتم دستمان اینجوری نزار همچی گیر می دیدی علکی نکته سنجی های زیاد زیاد می زیاد میشه. نقنق زدن ها زیاد میشه. به خاطر اینکه پاتو بیش از اندازه از دراز کرده. بله یه بار آدم مستر و حکم سانویه. تصالف مستری مستره. صاحب خونه. مثلا اساسات ریخته تو کچه. حالا مستر حالا مجبوری بری پول قرص کنی. مثلا مستره رهن یا اجاره که خودت و بچه زیر آسمون نراشی. که این گرما یا جیز سرما. اونجا اشکال نداره اون حکم سانویه به خاطر یه اهم دفع مهم میکنه. اونجا اشکال نداره اما یه الکی علکی بری قرضای کمر شکن کنیم که اینجا میخوام تو خونه حموم سو درست کنم اینجا میخوام به جای مثلا شنشست مثلا سنگ نمیرم که چی, چی گرانیت بزنم اینجا میخوام به جای رنگ پلاستیک رنگ روغنی بزنم با گل بر جسته خب با گل بوته شد این کار. لازم نیست پیشه ار رئیس یه چند صد بار دلار و راست پیشه ایمومن ها رماننده او این دوتا هم حاشیه زنین پس اگر کسی فشارهای روحی داره نمیتونه در هنگام بروز چنین مسائل و اختلالات ذهنی یا اختلالات روانی یا آشفتگی ذهنی نمیتونه با دوره درمانی سرکه طبیعی سیب بهبودی ببخشه بلکه باید چیکار کنه؟ بلکه بایستی تعداد کار رو کم کنه و همچنین مدیریت برخیشتن داشته باشه در مواقع بحرانی در محاصره اقتصادی یا محاصره نظامی دشمن و یا تو بحث های دیگه مثلا قهز های کمرشیکن علکیه نکنه توضیح هم بارو واید جدن میخوام حافظم تقویت میگیم تقویت حافظه میخوایی؟ باید نگاه کنی اون آملهای زعف حافظه کدومه؟ اول باید شناسایی عامل زعف حافظه در خودت کنی بعد درمان کنی نمیتونی یک دارو به همه بدی مثلا اگر همه زعف حافظه دارن مثلا شی اسناعشری زعف حافظه نداره مامین مامنات هم نداره چه اصول بهداشت فردی و اجتماعی رعایت میکنن مواظب بدنشون هم مواظب اعضا و جوالشون هم چون اینها را امانت میدنن شیعه اصناعشتری و مومنین مومنات امین امانت دارن امانت رو زایه نمیکن حالان مثال میزن مثلا اگر همه ضعف حافظه داشته باشن اینطوری به همه یه نسخه بدیم بگی همه تون هر روز صبح 21 عدد مریض بخور که کشمش انگور سیاهه بابا این حرف سر جاش درسته روایت هم داریم درسته اما حالا باید ببینی اگر عامل ضعف حافظه در این مریض کمبود منگنزه حالا بهش بگو هر روز صبح 21 عدد نشته مریض بخور یا تو چی گفتم موامنام روایات اردبه که زایش نکنیم که بعد دکترای قلبی شرقی داخل و خارج اشکال بگم پس بعد عامل ضعف حافظه رو در مریض پیدا کنی بعد این جمله رو بگید جمله‌تون بسیار درست انگور هر چی باشه کشمش هر چی باشه درصد منگنزش بالاتر تو بحث زریب شکست نور از هر شیئی ها تو بحث منشور راست ثابت شده است که ما از ذریب شکست نوری که از شیع برمیخیزه میفهمیم این شیء دارای چه مواد متشکل است؟ دارای چه عناصری؟ بحث تیف نور بحث منشور چه در کورات و سیارات باشه چه در همین چیزهایی که نزدیکمونه با چشم زاهری میبینیم رنگای هر چیزی دلالت بر بعضی مسائل میکن بسهار مثلا رنگ زرد میوه یا سبزیجاتی که ببینیم گلیلی برای زیاده. بیتاکاروتن پایه ویتامین آس حالا با اسید کلوریلی که معده تحکیب بشه ویتامین آس زیاد تولید چقدر فواید داره یکیش نور چشم زیاد میشه یکیش حافظه مندگار میشه حالا خواستم بگم که باید عامل زعف حافظه در مریض تشخیص بودید یه با دیگه میگه هیچ چی نیست اما این مریض مریضیه که به کارش بیشتر از بدنش اهمیت میده مثلا صبح خواب پا شده، جنوب شده تصالب فهمیدی؟ زود کفش کلام میکنه سرویس هم دیر نشه باشه حالا زور برگشتم خونه یا بعد از زور قصد جنابت یا سر کار میرم قصد جنابت بابای جون از آب اداره کنیم تونی قصد جنابت کنیم باطل قصت؟ حالا محضور مثلا بدون قصد جنابت کفش کلام میکنه میره سر کار خب در بین کارش در طول روز خوراکی میخوره آش مکروب بعد از مکروب در هنگام جنابت بدون قصد جنابت خوردن آشامیدن مکروب یه سری عوارض داره یکی چیه؟ حافظه دیدی این شخص رفتار منفیشو با خودش باید ترک کنه یعنی خوراکی و آشامیدنیش بعد از قصد جنابت باشه گاهی میبینین سیستم دفاعی بدنش ضعیفه. کالری بدنش تبقیه سنش کمه انرژیش. کم جوان و نوجوان دو هزار دیویست پیر مرد پیر زن هزار حالا بیدی کالری انرژیش کم سیستم دفاعی بدنش ضعیف ضعف عمومیش شدید تونتون هم سرما میخوره سرما خوردیش هم تول میکشه ضعف ازولات هم داره زود بدنش کوفته میشه زود دست باش به خواب میره به خاطر کمخونی فقر هم همین رو با چیخ باید خوب کنی اما فرمایش امیر المومنین علیه علیه السلام عمل کنی کلمات قصار قرار الحکم آمدی اولین قضا و نوشیدنی بعد از قصل جنابت شربتن من العسل عسل رقیق شده طبیعی بخورید تو قوات سودتر برگرده بفهمم این فرمایش گوهربار و دولربار امیران مومنی علیه, علیه السلام عمل کن همه این خوب میشه شما شمارده حالا بیم مثل تقویت حافظه که یک کم توضیح دادم خارجی ها میان اول اصل رو فاسد میکنن بعد میگن بخور یکی از ابزار تقویت حافظه بعضی اطاری های تو ایران هم حرف خارجی ها رو تکرار میکنن میگن اصل مخلوط با سرکه سیب، یکی از ابزار تقوییت ره حافظه است. این کتاب بشونم آوردن؟ مارگوت هلمیس مترجم نیکی و خورگر صفحه نوت. نمشته در هر وعده غذایی یک لیوان مخلوط سرکه سیب و عسل بنوشید. بعد ما اینجا حاشیه زنید. بگذریم آموزش چرا بگیری فاسدش کنی بعد با فاسد دفعه افسد کنی چه این کار میگه طبقه روایات شیعه مؤمنان شیر عسل صبحگاهی اینقدر فواید داره یکیش تقویت حافظه مندگاری حافظه اصلی و حافظه موقت سرعت داد اطلاعات ذهن و من تغذیش اطلاعات به نوع قوی، قوه مفکرت فعال و قوی و مندگاره، یعنی سی پی مغز تقویت شده. فواید دیگه هم داره، ضد باکتری، ضد قارچ، زده, زده, زده آمیب، ضد باسیله، ضد میکروب و وقتی عسل طبیعی رقیق بشه، خاصیت میکروب کشیش دو بره بره. حالا اینجا شیر عسل سبگاهی، اسرانه، سرکه رقیق شده با آب گفتیم تو قاشو چای خوری یا یه قاشو مرو بخوری سرکه طبیعی سیب در یه لیوان آب هم بزن یواش یواش اسونه بخور شبم آب سیب شامگاهی ضعف عمومی تام شدید آب سیب عسل بخور بفرمایید هیچ کدومم فاسدی نیست همش هم به لازم نیست ما رو فاسد کنیم یه چیزیو بعد مصرف کنیم که در روایات چی میفرما از چیز عسل رو فاسد میکنه که قبلا تذکر دادم اللهم صل على محمد